قاهره، مصر 20 اکتبر 1992 مردی که مقابل من نشسته بود از آن تیپ آلمانی نازی بود که معمولاً فیلم های جنگ جهانی دوم به تصویر می‌کشیدند. بلوند و موبور با چهرهی مسمم و قاطع شنوشورک های صورتش خطوطی تیز و باران داشت طول صدایش یک نواخت بود و بالا و پایین نمی‌رفت. با آن لحن محکم و قاطعش گویی زراباتی به من میزد که تمام وجودم لرزید. چند لحظه سکوت کرد و نفس عمیق کشید و بعد شروع بر... و بعد حرفش شروع کرد و از برنامه هایش برایم گفت. به زبان آلمانی با من حرف میزد. من را به یاد راه بهای مدرسه آلمانیم در بابو لوق می میانداخت که زبان آلمانی را از آنها آموخته بودم. گذرنامه را لازم داریم تا برای ورود به آلمان برات ویزا صادر کنیم. کنسولگری میگه نهایتا دو روزه آماده میشه. بعد بلند شد و ایستاد. دستش رو به طرف من دراز کرد و ادامه داد: سفرت هفته آینده است. این قاطعیتش بود که مرا تحت تاثیر قرار داده بود یا سماجت او نمیدونم. اما در نهایت تسلیم شدم. مطیعانه دستم رو به طرف کیفم بردم که در گوشه میز قرار داشت و گذرنامه‌ام را... را بیرون آوردم تا به او بدهم. نمیدونستم چه باید بکنم. فقط میدونستم اگر بخواهم توقف کنم، پهوایم یاریم نخواهند کرد. زمان برای من به طور کامل متوقف شده بود. کمی بعد که به خود آمدم، دیدم دارم از روی صندلی دفتر کارم بلند میشوم و کیفم رو دنبال خودم میکشم. از مؤسسه آمریکایی که در آن کار میکردم خارج شدم. انگار صدای مدیرم رو هم شنیدم. کجا ریلی. لیلی؟ تاکسی گرفتم. ماشینی که حال روزش بهتر از شهر فقیرش نبود. به نظر می رسید این اتومبیل هم از اثر زلزله هفته گذشته قاهره در رنج بود. از مناظری که از پنجره تاکسی دیده میشد این احساس به بیننده دست میداد که گویی زلزله هنوز هم ادامه دارد و شهر را میلرزاند. از یک هفته قبل که ساختمان ها لرزیدند، مهر ترس و سکوت بر چهره ایبرون پیاده‌روهای پایتخت نقش بسته بود. من به خاطر آرامشی که اون روز داشتم به خودم میبالیدم. حتی دوستانم رو مسخره میکردم که شدت لرزش آنها از مقیاس ریشتر زلزله هم بیشتر بود. اما امروز میبینم هر که در اطرافم وجود دارد در صبات آرامش است در حالی که من حراسانم میترسم تا حدی که نزدیک است کاملا از پا بیفتم. احساس میکنم من هم مثل یکی از این ساختمان ها هستم که به پایه هایش ضربه وارد شده بیشتر برقش آن ترک برداشته و برخی قسمت هم فرو ریخته است. آنچه درون من باقی مانده زنیست که خود را اصیل و در این حال سخت و محکم که نباید شود اما حس می کنم زلزله قاهره در مقایسه با طوفان درونم یک لرزش ساده بیش نبود. خودرو وسط ازدهام همیشگی قاهره به آرامی حرکت می کرد. راننده مثل یک بکسور پیر روی رینگ آسفالت حرکت می کرد. انگار به چپ و راست مشت می زد. بسیار حرفهی مانور می داد تا بتواند به یک گوشه خیابان برود و من رو با آدرسی که داده بودم برساند. مطمئن نبودم آدرسی که به آدرس فرید بود یا آدرس خانه خودمان؟ از پنجره ماشین که به بیرون نگاه می کنم، چهره ابوس آبران را می بینم. از وقتی زلزله آمده همه چهره شان گرفته است. انگار تازه فهمیدند زمینی که روی آن قدم برمی دارند، آنقدر هم که می خوب و مربان نیست. در حیرتم آیا این طور جوی انکاس وضعیت است که در آن قرار داریم یا اینکه زندگی حقیقی ما همه تیره و تاریک است؟ دوست دارم بر سرشان فریاد بکشم و بگویم که آنچه بر آنها میگذرد در مقایسه با خبری که آقای هیلموت به من داده هیچ است از آنها روبر می گردانم و به سمت دیگر نگاه میکنم. نیل را هم ابوس و اخموم می یاوم. است خسته و دلتنگ در سکوت پیش میرود. صدای یک نواخت ی نیل هوشیارم کرد به جایی که وقتی امروز صبح از آن خارج می شدم، فکر میکردم کردمم خانه است نزدیک می شدیم. نمیدونستم اول نزد فرید بروم یا به خانه کاملا گیج بودم بالاخره تصمیم گرفتم به خانه بروم آنجا بود که میفهمیدم واقعیت چیست؟ آیا هیلموود یک دروغوی حقوقه باز است؟ یا او تنها کسی است که حقیقت را به من می گوید و از توهمماتی که از زمان تولدم فکر می کردم واقعی هستند پرده بر میدارد. دلم امیدوار بودم دلایل و مدارک مدارکی که او آورده بود یک, حق... یک زشت باشد. تاکسی در خیابان ساحلی با باگی پیش میرفت و به طرف خیابان های محله سیتی شهر قاهره حرکت می یک خیابان قدیمی که به سختی برای حفظ رونق قدیم خود تلاش می کرد. خیابان قدیم در مقابل حمله تجددگرایی و مدرنیته درگیر نبرد سختی بودند تجددی که روز به روز آثار شکوه خیابان قدیمی را محدود میکرد و این شکوه و عظمت میرفت که نشانهایش به طور کامل از بین برود به ساختمان‌های قدیمیش نگاه میکنم. اولین چیزی که ظاهرشان نشان میدهد سن آن هاست که حدود 100 سال یا شاید هم بیشتر باشد. صدای بم و خشن راننده رشته افکارم را پاره کرد. همین جاست. راننده تاکسی بدون اینکه سؤالی از قبل پرسد یا توضیحی در مورد آدرس بخواهد، مقابل خانه ایستاد و غافل گیرم کرد. این خانه متعلق به خانواده مادرم بود، که از خانواده اشرافی قدیمی بودند. ساختمان خانه اسوار در کنار من ایستاده بود. قلبم همیشه در آن احساس امنیت داشت. این بار اما احساس می کردم من دختر این خانه نیستم و این خانه یکی از حلقه های است که زندگیم آن بنا شده بود. فکر کنم اما آدم دربان امارت از آمدن ناگهانی من که زودتر از زمان معمول بود تعجب کرد. وقتی از مقابلش به طرف پله ها او از جایش تکانی خورد و برخاست. از کنار رد شده و گذشته بودم که شنیدم میگوید خیر باشه لیلی خانم. پاسخی نش ندادم. به سرعت برق از های قدیمی امارت بالا رفتم. مقابل درب خانه که رسیدم کاملا فلج شده بودم. ایستادم تا نفسی تازه کنم. نفس نفس میزدم چند لحظه بعد شروع کردم مثل دیوانه ها داخل کیفم دنبال کلید گشتن. به نظرم آمد کلیدها ها رو دیدم اما باز هم به زیر و رو کردن محتویات کیفم ادامه دادم. انگار امدن میخواستم ورودم را به خانه کمی بیشتر به تأخیر بیاندازم. از زیرو رو کردن کیف دست برداشتم، سعی کردم تمرکز کنم و حواسم را جمع کنم. پشتم را به در تکیه دادم، نفسم بریده بود از خودم تعجب می کردم که از وقتی آقای هیل دیدم حتی یه قطر اشک هم نریختم. معمولا در فیلم ها، وقتی قهرمان داستان متوجه می شود کیست و خود واقعیش را میشناسد جاری میشود. سعی کردم گریه کنم اما نتوانستم شاید چون هنوز ته دلم امید واحی داشتم به اینکه سخنان مرد آلمانی فقط یک خواب باشد خوابی که اصلا اتفاق نیفتاده و هرگز وجود نداشته است رویم را رو برگرداندم دست روی کلید زنگ گذاشتم و زنگ زدم پشت سر هم زنگ می زدم. مثل یک زخمی که نیاز فوری به درمان دارد مادرم هراسان در را باز کرد خودم را در آغوشش انداختم عشق مثل آبشار از چشمانم فرو رو می رخت. به لکنت افتاده بودم حرفها و کلمات در همی می گفتم صدایم بیشتر به ناله شبیه بود منطقی چیزی که بر زبان آوردم سؤالی بود که هیچکس جز او پاسخ قاطعی برایش نداشت مادر می خوام حقیقت رو بدونم خواهش می کنم